عزیزان ما هر روز توسط دنیا و تبلیغاتی که میگه دنیا در مورد ثروت واقعی چی فکر میکنه بمباران میشیم. وقتی ما کسی رو میبینیم که یه چیز جدید گرفته، مثلا یه لباس جدید گرون خریده، دیگه واسه همون سخته بخوایم تعلیمات خدا رو در مورد ثروت واقعی بیاد بیاریم. دوستان، به کلاس دیگر از دانشکده کتاب مقدس خوش اومدین. در این کلاس، ما کل کتاب مقدس رو بررسی می‌کنیم. بررسی ما از عهد عتیق گذشته و حالا در عهد جدید به بررسی نامه‌های پولس رسول می‌پردازیم. اگه شما تازه به ما ملحق شدید، فکر نکنید که خیلی دیر شده. هیچ وقت برای مطالعه کلام خدا دیر نیست. ما در حال مطالعه نامه خیلی جالبه پولس رسول به کلیسای قرنتوس هستیم. خدا چیزهای زیادی رو به ما آموزش می‌ده. حالا اجازه بدید تا به معلممون ملحق بشیم. در این کلاس من بررسی خودمون رو از دومین نامه پولس به کلیسای قرنتیان ادامه میدم. اگه شما کتاب مقدس دارید لطفاً به باب هشت و دوم قرنتیان برید. اجازه بدید من یک بار دیگه یه جمعبندی کلی و بررسی اجمالی از این نامه رو به شما بدم. در دوم قرنتیان حقایق عظیم و عمیقی وجود داره که من وقت ندارم همش رو با شما در میون بذارم. بعضی وقتا کسانی میاند و به من میگن تو از آیه مردل و قیمن در این کتاب گذشتی اینجا کلی آیه هست قسمت های عمیقی از کتاب مقدس در این کتاب هاست که من از اونها میگذرم چون سعی میکنم که از بالا نگاهی به کتاب بندازیم و یک جمبندی کلی از اون داشته باشیم بعد اونا رو جمع میکنم و با شما در میون میذارم. هدف من اینه که به شما نشون بدم که نگاهتون به این کتاب ها باید چطور باشه. وقتی که به باب هشت و نوه دوم قورنتیان نزدیک میشیم به موضوع عملی این نامه ها میرسیم. قبلا هم به این باب نگاهی انداخته بودیم. اجازه بدید تا شما رو به چالش بکشم تا بعضی از قسمت های بزرگ دیگه این نامه رو مطالعه کنید. برای مثال اینجا یک قسمت فوقلاده وجود داره که پولس در اونجا دیدگاهی از روابط شخصیتون به شما میده. او میگه زیرا اگر شما را اندوه گین سازم دیگر چه کسی میتواند موجب شادی من شود جز شما که اندوهکیینتان ساخته من فکر می کنم که این عمیق ترین و عملی ترین حقیقتی که در این تعلیم وجود داره. این رو در ازدواج خودتون به کار بگیرید. مخصوصا اگر شما بازنشسته هستید. بعضی وقتها ها این یک برکت که یه مرد سر صبح از اتاقش بیرون میاد و به سر کار میره، اغلب موارد این برکت خیلی بزرگی برای زنها هست. وقتی شما به مرحله ای از زندگیتون رسیدید که دیگه لازم نیست از در خونه بیرون بزنید و سر کار برید یه سری تنش ها به وجود میاد این چالشیه در مرحله دیگر از روابط شما با همسرتون که وقتی تمام روز در کنار هم هستید به وجود میاد حالا بهش فکر کنید شخصی که با او زندگی می کنید دوستش دارید اگه او رو ناراحت کنید اگه او رو دل سرد کنید چه کسی دوباره میخواد این رابطه رو درست کنه به جز کسی که شما او ناراحت کردید آهنگ معروفی بود که سالها پیش میشنیدیم که می گفت شما همیشه کسی رو اذیت می کنید که دوستتون داره کسی که اصلا نباید او رو اذیت کنید. او آخرین کس توی این دنیاست که باید اذیتش کنید او آخرین کسیه که شما باید دل سردش کنید چون کسی جز اون نمی تونه شما رو بنا کنه کسی که همیشه با رفتارتون افزردش میکن در پایان بابشش پولست این رو تعلیم میده جدایی تعصب و تبعیض من همیشه اینو میگم که توجه مردم رو جلب کنم با این حال اگه شما نگاهی به این قسمت بندازید، پولس تمام اینها رو تعلیم میده. اما اساس تبعیض و تعصب و جدایی، مبناش قومی و نژادی یا جایگاه اجتماعی نیست. بلکه مبنای اون ایمانه، در این قسمت پولس میگه زیر یوغ ناموافق با بیر ایمانان نروید. زیرا پارسایی و شرارت را چه پیوندیس و نور و ظلمت را چه رفا او از عتیق نقل میکنه که میگه پس خداوند میگوید از میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید هیچ چیز ناپاک را لمس نکنید و من شما را خواهم پذیرفت من شما را پدر خواهم بود و شما مرا پسران و دختران خواهید بود خداوند قادر مطلق میگوید چیزی که پولس به ما میگه اینه که شما باید از بی ایمانان جدا بشید حالا شما نمیتونید مثل راهبهای صومعه از دنیا جدا بشید چون اینجوری نمیتونید به دنیا بشارت بدید. عملاً چیزی که پولوس در زبان اصلی میگه اینه: از میان آنها بلند بشید و از آنها متمایز باشید. پولوس از کلمه یونانی استفاده میکنه که اگه شما کشاورز باشید و به زمینی که روی اون کار میکنید نگاه کنید، در یک نگاه میتونید بگید که لوبیا کجا کاشته شده، کاهو کجا کاشته شده و سیب زمینی کجاست. او میگه از میان آنها بلند بشید و متمایز باشید پولس نمیخواد که روابطتون رو با جهان قطع کنید اما میگه ما باید متفاوت باشیم هیچ وقت این واقعیت که شما باید فرق داشته باشید چون بهترین هستید رو فراموش نکنید شما تبدیل شدید یه پای شما توی بهشته شما تجربه تبدیل شدن دارید تجربه بیابان و تجربه آسمانی صدای قدم شما با صدای قدم که هنری دیوید ترون نوشته اگه انسانی سرعت قدمهاش را با دیگران هماهنگ نکنه شاید به این دلیله که صدای طبل دیگه‌ای رو گوش میده. او میگه بذارید با صدایی که خودش میشنوه گام برداره. بالاخره یا دور میشه یا هماهنگ میشه. اگه باب هشت و نه این نامه رو مطالعه کنید، دو باب بزرگ کتاب مقدس رو مطالعه کردید که موضوعشون در مورد هدایا هست. هدایا موضوعی نیست که خیلی ها بهش پرداخته باشند. وقتی که من 25 سالم بود خدمت شبانی خودم رو شروع کردم. اون موقع میگفتم من در مورد پول معزه نمی کنم. به این خاطر که داستان زیادی در مورد کسانی شنیده بودم که تلاش میکردند دوستانشون غونهوادهشون و همسرانشون رو به کلیسا ببرند و زمانی که موفق می شدن وقتی که او رو به کلیسا می بردن زمانی بوده که در مورد پول و هدایا معیظ می شده. مثلا پدربزرگ من یه روز به خونه برمیگرده و میگه، اونا فقط پول ما رو می‌خواستن. همشون از یه جنسن. اونا فقط پول رو می‌خوان و او دیگه به کلیسا نمی‌رفت. به این دلیل میگفتم که نمی‌خوام در مورد پول موعظه کنم. اما به عنوان یه شبان یاد گرفتم که شما نسبت به وضعیت روحانی افراد مسئولیتی دارید. به عنوان یه شبان یاد گرفتم که هیچ راهی نیست که شما در مورد پول موعظه نکنی. کتاب مقدس به ما تعلیم میده که بهبود شرایط روحانی شخص در مورد مباشرت به وفاداری او و یا عدم وفاداری او بستگی داره در لغا باب 16 خداوند در مسئله مباشر زیرک تعلیم میده که اگه شما در مدیریت کردن ثروت و داراییتون وفادار نباشید خدا شما رو با سروتهای واقعی برکت نمیده خدا های روحانی رو از شما دور میکنه اگه خدا های روحانی رو از افراد که شما دور کرده به این دلیل که آنها در این عرصه وفادار نبودن. شما به عنوان شبانی وفادار باید در مورد مباشرت مواظه کنید من در هر کلیسایی که شبان بودم همیشه سعی می کردم ندونم چه کسی چه قدر داده اما من حسابداری داشتم که به من می میگفت شبان تو باید بیای و به دفاتر حساب نگاهی بندازی تو باید به این دفاتر نگاه کنی تا بفهمی چرا افراد کلیسات همش توی دفترت هستن تا بهشون مشاوره بدی چه دلیلی داره که اونها همیشه وضعشون قدر آشفته باشه که نتونن یه سکه یه کوچیک توی جعبه هدایا بندازن. تو باید کمکشون کنی که مشکلات خودشون رو حل کنن و در مورد هدایا موعظه کنید. خب نیازی نیست که بگم من دفعات زیادی در مورد هدایا صحبت کردم. اگه شما میخواید در مورد مباشرت موعظه کنید، بابی بزرگتر از این دو باب پیدا نمی کنید. باب هشت و باب نه دوم قرنتیان که بتونید مععزتون رو بر اساسش تنظیم کنید. پولس مشغول جمع‌آوری هدیه برای مقدسانی بود که در اورشلیم در جفا بودند و اونها یهودیان مسیحی شده بودند. اونها کسانی بودند که زمانی پولس به اونها خیلی جفا کرده بود. شاید برای همین پولس در پی جمع‌آوری هدایا برای اونها بود که در مورد اونها احساس گناه می‌کرد چون چند بار او به این اشاره کرده بود. پولس بار بزرگی برای مقدسان رنج کشیده در اورشلیم در قلبش داشت و می‌خواست که کمکشون کند. خدمت اصلی پولس به غیر یهودیان بود. ایمانداران قرنتوس، افسوس و کولوسی غیر یهودی بودند. پولس بزرگترین مبلغ دنیای غیر یهودی بود اما به تمام این ممالک غیر یهودی می‌رفت و هدایای عظیم زیادی رو برای مقدسان یهودی که در اورشلیم در جفا بودن جمع می‌کرد. پولس خواست که قرنتیان هم در این حرکت شریک باشند. پس در باب 8 و پولس دستورالعملش رو در مورد جمعوری هدایا به قرنتیان میده. قبل از اینکه این دو باب رو جمع بندی کنم، من اونها رو برای شما می خونم چون این قسمت های عمیق نشان دهنده سیاست و درایت پولسه. میتونیم بگیم که پولس یه فروشنده بزرگه. پولس در خیلی از زمینه‌ها عالیه. پولس از سیاست و درایت عالی در تشویق قرنتیان به جمعوری هدایا برای مقدسین در جفای اورشلیم داره. راهکار او در این دو باب که برای قرنتیان از فیلیپی نوشته بود کاملا مشهوده. یادتونه که پولس وقتی بعد از اون آشوب افسوس رو ترک کرد به فیلیپی رفت چون او در بحران بود و کلیسای فیلیپی کلیسای مورد علاقش بود. فیلیپیان او را همیشه حمایت می‌کردند. پولس به قرنتیان مینویسه من با پذیرفتن کمک مالی کلیساهای دیگر را غارت کردم تا بتوانم شما را خدمت کنم. وقتی پولس این رو مینویسه منظورش اینه که او حمایت‌های کلیسای فیلیپیان رو قبول کرده تا بتونه به کلیسای قرنتیان خدمت کنه. پولس اجازه نمیده که کسی خدمت او رو حمایت کنه. پولس متقاعد شده که شما فرد روحانی هستید. شما تبدیل شده اید. یه پای شما در بهشته و شما این کار رو به خاطر عشق به خدا انجام میدید. شما باید پولس رو متقاعد میکردین که هدیه شما به او عملی از پرستش تا در خدمت او از حمایت کردنه. مسیحیان اورشلیم با او شریک بشی پولس از قرنتیان افسوسیان یا تسالونیکیان زمانی که در شهر اونها خدمت میکنه پولی نمیگیره تا زمانی که فیلیپیان براش پول بفرستن پولس چادردوزی میکرد و خرج خودش و تمام سفرهای خدمتی خودش رو در می آورد و نمیخواست از کسانی که هنوز روحانی نشدن پولی بگیره با این حال او اجازه میده که فیلیپیان حمایتش کنن وقتی پولس از فیلیپی برای قرنتیان نامه مینویسه کار قشنگی انجام میده. پولس الگویی رو که فیلیپیان رعایت می‌کنن به قرنتیان نشون میده. پولس میگه من میخوام که شما بدونید اونها اینجا در فیلیپی چطور هدیه میدن. میخوام بدونید که نگرش اونها چیه و انگیزشون چیه. روشی که اونها هدیه میدن چطوریه. پس پولس با دادن الگوی کلیسای فیلیپی یا برادران مقدونی به قرنتیان میگه که چطور در این زمینه عمل کنه. گوش کنید که پولوس در بابهای 8 و 9 دوم قرنتیان چی میگه. اکنون ای برادران، میخواهیم شما را از فیضی که خدا به کلیساهای مقدونی عطا کرده است، آگاه سازیم. زیرا در همان حال که ایشان به سبب زحماتی پرسا در بوته آزمایش قرار داشتن از شادی بی و فقر بسیارشان سخاوتی بیکران جاری گشت. چرا که در حد توان خیش و من شاهدم که حتی بیش از آن خود پیش قدم شده با اصرار زیاد از ما خواهش کردند که در این خدمت به مقدسان سهیم باشند ایشان حتی بسیار بیش از انتظار ما عمل کردند زیرا نخست خیشتن را به خداوند تقدیم داشتند و سپس بر ما نیز بر طبق اراده خدا به همین جهت از تیتوس خواستیم همان گونه که خود پیشتر قدمهای آغازین را در این تدارک این عمل سخاوتمندانه شما برداشته بود اکنون نیزان را به کمال رساند. حالا او به قرنتیان یه تصویر میده. پس چنان که در همه چیز ممتازید، در ایمان، در بیان، در معرفت، در شور و حرارت بسیار و در محبتتان به ما، پس در این فیض بخشندگی نیز گوی سبقت را برو باید. حالا بزرگترین آیات این قسمت اینها هستند. زیرا از فیض خداوند ما عیسی مسیح آگاهید که هرچند دولتمند بود، به خاطر شما فقیر شد تا شما در نتیجه فقر او دولتمند شوید، پس نظر خود را در این باره بیان می کنم زیرا به سود شماست. سال گذشته شما نه تنها در انجام این کار خیر، بلکه در اشتیاق به انجام آن نیز پیش قدم بودید. پس اکنون کار خود را به کمال رسانید تا اشتیاقتان به این کار انجام کامل آن را نیز فراخور توان مالیتان در پی داشته باشد. زیرا اگر اشتیاق باشد هدیه شخص مقبول میافتد البته بر حسب آنچه کسی دارد نه آنچه ندارد زیرا خواست ما این نیست که دیگران در رفاه باشند و شما در فشار بلکه خواهان برقراری مساواتی تا قنای شما در حال حاضر کمبود آنان را برطرف کند و روزی نیز قنای آنها کمبود شما را برطرف خواهد کرد بدین سان مساوات برقرار خواهد شد چنانکه نوشته شده است آنکه زیاد گرداورد زیاده نداشت و آنکه کم گرداورد کم نداشت خدا را شکر می کنم که در دل تیتوس نیز نهاده است که همچون من به فکر شما باشد زیرا او نه تنها تقاضای ما را پذیرفت بلکه خود با اشتیاق بسیار برای آمدن نزد شما پیش قدم شد و ما همراه او برادری را می فرستیم که همه ی کلیساها او را به خاطر خدمتش به انجیل می ستاین. به علاوه او از سوی کلیساها انتخاب شده تا در انجام این کار خیر که برای جلال خدا و نشان دادن خیرخواهیمان خدمت آن را بر عهده ایم هم سفر ما باشد ما بسیار مراقبیم که خدمت ما در گردآوری این هدیه سخاوتمندانه مورد انتقاد کسی قرار نگیرد زیرا میکوشیم نه تنها در نظر خداوند بلکه در نظر مردم نیز آنچه چه صحیح است انجام دهیم همراه این افراد برادر خود را نیز میفرستیم که بارها اشتیاقش را از راههای گوناگون بر ما ثابت کرده و اکنون اشتیاق او به خاطر اطمینان بسیارش به شما حتی افزون تر نیز گردیده است درباره تیتوس باید بگویم که در خدمت به شما شریک و همکار من است و در باره برادران برادرانمان نیز باید بگویم که فرستادگان کلیساها و جلال مسیح پس محبت خود را در عمل با آنها ثابت کنید و نشان دهید که فخر ما به شما بی اساس نیست تا همه کلیساها ببینند نیازی نیست درباره این خدمت به مقدسان به شما بنویسم این دو عالی با موضوع جماوری هدایاست چون به ما در مورد اصلی میگه که باید در مورد جماوری هدایا به کار ببندید اول از همه ما چگونگی حمایت ایمانداران فیلیپی رو میبینیم همونطور که پولس این الگو رو به قرنتیان میده، او میگه ایشان حتی بسیار بیش از انتظار ما عمل کردن. زیرا نخست خیشتن را به خداوند تقدیم داشتن و سپس بر ما نیز بر طبق اراده خدا. همونطور که گفتم پولس دلش نمیخواد این پیشنهات ها رو قبول کنه مگر اون که اونها اصرار کنن. اونها اول خودشون رو به خدا میدن و بعد از پولس با در نظر گرفتن اراده خدا حمایت میکنن. میتونیم بگیم که هدیه دادن اونها بیشتر برای انجام کار خدا هست. اونها با میل خودشون میدن و درخواست میکنن که این فرصت به اونها داده بشه، مشخصه که این برای پولس خیلی مهمه. پولس کسی رو وادار نمیکنه که این کار رو انجام بده پولس میگه وقتی که او برای فیلیپیان می نویسه میخواد اونها رو در انتخابشون آزاد بذاره و نمیخواد اجباری در کار باشه. از این رو هرچند در مسیح این جسارت را دارم که، تو را به انجام آنچه سزاوار است حکم کنم ترجیح می‌دهم بر پایه محبت استدعا کنم نخواستم کاری بدون موافقت تو کرده باشم تا احسانت از روی میل باشد نه به اجبار من فکر می‌کنم که اراده برای پولوس خیلی مهمه او میگه چیزهایی که میدین باید از روی میل باشه پولوس سخاوتمندان خوشحال رو دوست داره نه اینکه کسی با اکراه کاری رو انجام بده حالا اونها با سخاوت هدیه میدن و این ما رو کمک میکنه تا اصلی رو که اونها در دادن هدایا دارن درک کنیم وقتی کسی با سخاوت چیزی میده اولین چیزی که به ذهنتون خطور میکنه اینه که آیا اونها ثروتمندانند درسته که برای اونها سخت نیست که هدیه ای بدن اما پولس این رو میگه این را به شما حکم نمیکنم بلکه میخواهم خلوص محبتتان را در قیاس با شور و حرارت دیگران بیازمایم این اشخاص هدیه نمیدند که تظاهر کنند و ثروت منجل کنند اونها از فقر و تنگ دستی خودشون هدیه میدادند زمانی که حتی در رنج تنگ دستی خیلی شدیدی بودن. حالا این سوال پیش میاد که قدرت بخشندگی اونها چقدر بود؟ بولس وقتی میگه اونها به اندازه توانایی خودشون و حتی بیش از تواناییشون دادن جواب این سوالو میده. تا به حال از این موضوع تعجب نکردید که چگونه ممکنه یکی خارج از تواناییش کاری رو انجام بده؟ اولوس میگه که فیلیپیان بر اساس چیزی که داشتن میدادن نه بر اساس چیزی که نداشتن. خیلی وقتا ما در مورد هدیه دادن غیر واقع بینانه فکر میکنیم. ما تجسم میکنیم مثلا حالا اگه کلی پول داشته باشم میتونم پول زیادی به خداوند بدم. اما ببینید، مباشرت شما بر اساس چیزی نیست که ندارید، بر اساس اون چیزی که دارید. من داستانی شنیدم که خیلی وقت پیش اتفاق افتاده بود. یه شبان در کلیسای خودش نازری داشت که میلیونر بود. شبان ناخدا برای افراد ثروتمند تبعیض قائل میشد. او هیچ وقت در زندگی شخصیش فرد میلیونری رو نمیشناخت و نمیدونست که در مقابل اونها چه رفتاری داشته باشه. او فکر نمی کرد که یه شخص پولدار بتونه مسیحی مؤمنی باشه. این مرد پولدار به قدری پیر بود که جای پدر او بود. پیر پیرمرد میدید که او برای ثروتمندان تبعیض قائل میشه. یه روز شبان رو برای سواری میبره و میخواد که اون شبان رو خدمت کنه مثل یه پدر که پسرش رو خدمت میکنه همینطور که پیش میرفتن پیرمرد میلیونر به او میگه اون ور جادهی شرکت داره که تمام خونه های اون سمت جاده مال او هست شبان میگه اگه من این همه پول داشتم نمیدونستم باهاش چیکار کنم و پیر مرد ناخداگاه میگه خب خدا میدونه شاید چون تو نمیدونی با این همه پول چیکار کنی بهت نمیده از اینجا به بعد او شروع میکنه به کار کردن روی شبان. نزدیک چهار ساعت بعد میلیونر به شبان میگه فکر میکنم به این دلیل میلیونر هستم چون خدا میدونسته که می تونه روی من حساب کنه و میدونسته با پولا چیکار خواهم کرد. او میگه من بزرگترین برادر خانواده بودم. ما جمعا نه تا بچه بودیم و وقتی که میخواستم به کالج برم پدرم مرد و من دیگه نتونستم به کالج برم. مرگ پدرش باعث میشه که او از خواهرش و برادرهاش مراقبت کنه تا اونها رو به کالج بفرسته. او به پدرش متعهد بود. وقتی پدرش میمیره، به نوبه درخواست پدرش شروع به کار میکنه تا بقیه بچه ها رو به دانشگاه بفرسته و پیشرفت اونها رو ببینه. در هر صورت اون نمیتونه به کالج بره و بار پدر و مادرش رو بر دوش میکشه. در بحبوحه مشکلات مالی کشور، وقتی که آخرین بچه به دنبال کار خودش میره، حسابدارش در وال والستریت دست او رو به گرمی فشار میده و او از حسابدارش میپرسه چی کار داری میکنی؟ حسابدار میگه فقط میخوام بفهمم وقتی با یه میلیونر دست میدی چه احساسی بهت دست میده. البته اون زمانی بود که یک میلیون دلار خیلی با عرضشتر از یک میلیون دلار امروز بوده. در اون زمان این مرد 120 مبلغ و خادم رو حمایت مالی میکرد. او بازنشسته شده بود. اما این کار برای او مثل یک کار تمام وقت بود. با این کار نیاز مالی خادمین رو برطرف میکرد. او به شبان گفت: خدا میتونه در مورد پول خودش به من اعتماد کنه. بعد شبان گفت: میدونی اگه من پول زیادی داشتم خیلیشو میدادم به خدا. میلیونر گفت: تو الان چقدر میدی؟ اگه تو ده درصد چیزی رو که داری به خدا ندی، پس اگه یک میلیون دلار هم داشته باشی ده درصدش رو نخواهی داد. ببینید مباشرت در مورد چیزی که ندارید نیست. بلکه در مورد چیزی که داری بذارید نگاهی به الگوی هدیه دادن فیلیپیان بندازیم همونطور که هدیه دادن اونها الگویی برای قرنتیان بود میتونه برای شما و برای من هم الگو باشه فیلیپیان بر اساس توانایی های خودشون هدیه میدادن حالا شما از کجا میتونید اینو بفهمید من اشخاصی رو میشناسم که این الگوی هدیه دادن رو به کار میگیرن زن و شوهری رو میشناختم که با هم دیگه میشستن و پولشون رو میذاشتن مشخص میکردن که برای سال بعد چه چیزی میخوان به خدا بدن اجازه بدین بگم مثلا میخواستن پنج هزار دلار به خداوند بدن اما خودشون رو متعهد میکردن که ده هزار دلار به خدا بدن بعد اونها دعا میکرد و منتظر بودند ببینن خدا چیکار میکنه در طی اون سال پنج هزار دلار دیگه از یه جای غیر منتظره به دستشون میرسسی این چیزیه که بهش میگن هدیه دادن بیش از حد توانایی به این دلیل که پولس این دو باب رو اینطور شروع میکنه و به ما و به قرنتیان میگه اکنون ای برادران میخواهیم شما را از فیزی که خدا به کلیسای مقدونی عطا کرده است آگاه سازیم ببینید کلمه فیز یک کلمه یونانیه که کاریز یا کاریزما از اون میاد و به معنی قدرت خدا و برکت خدا بر زندگی شماست این چیزی نیست که شما انجامش میدید یا بهش میرسید یا به دستش میارید این چیزیه که چون فیض خدا در زندگی شما وجود داره، امکان پذیره. شما میتونید فیض خدا را در زمینه ی هدیه دادن نشون بدید. برای همینه که پولس میگه فیض هدیه دادن. همچنین برابری در هدیه فیلیپیان وجود داره. وقتی پولس می باید برابری وجود داشته باشه، این چیزیه که در عرصه ی هدیه دادن خیلی معقوله. من نمیدونم که خدا چطوری این رو میده. من نمی دونم که خدا چطوری این رو انجام میده، اما او میدونه. خدا میتونه هدایایی رو که اشخاص می دن، همونطور که فیلیپیان میدادن بگیره و کسانی رو که در فشارهای شدیدی بودن، شاید فقط فشار مالی، اما به هر حال اونها هدیه میدادن و خدا هدایای اونها رو میگرفت و برکت میداد مثلا هدیه یک زن رو که چیزی ناچیز بود، چنان برکت میداد که از هدیه یک میلیونر هم بیشتر به درد کار خدا میخورد بولاس میگه این همون برابریه که در فیض خدا وجود داره و باعث میشه که همه با هم برابر باشن. در عهد قدیم رسم ده یک وجود داشت یعنی یک دهم ده از چیزی رو که شخص داشت به خدا میداد. واژه ده یک به معنی یک دهمه ده با این حال اون تنها یک دهم ده از چیزهایی که شخص داره نیست بلکه یک دهم ده از چیزی که شخص به دست میاره. این یک مسئله مهم برای ده یکه بر اساس کتاب ملاکی اونها اگه ده یکشون رو برای خودشون نگه می‌داشتن یعنی از خدا دزدی کرده بودند به غیر از ده یک که متعلق به خدا بود اونها هدیه هم می‌دادند و به غیر از هدایا قربانی هم می‌کردند داوود در کتاب دوم سموئیل قربانی کردن رو توصیف میکنه. اما پادشاه به عرونه گفت نی بلکه البته به قیمت از تو خواهم گرفت و برای یهوه خدای خود قربانی های سوختنی بی قیمت نخواهم گذرانید. پس داوود خرمنگاه و گاوان را به پنجاه مسقال نقره خرید. قربانی کردن متناسب با شخصیت خود فرده. اگه شما بخواین ده یک بدین، اگه یه نفر ده میلیون دلار و یکی پنج هزار دلار سالیان درآمد داشته باشند و هر دوشون بخوان ده یک بدن، کسی که ده میلیون درآمد داره باید یک میلیونش رو بده و نه میلیون برای خودش باقی میمونه. که میتونه با اون زندگی خوشی داشته باشه شاید شما اگه سالانه 9 میلیون دلار داشته باشید مشکلی نداشته باشید و راحت زندگی کنید و بتونید سالتون رو به خوبی سپری کنید مرد دیگه که 5000 هزار دلار در سال درآمد داره ممکنه بیشتر از اون یکی آسیب ببینه با این حال اگه این دو نفر برند و بخوان هدیه و قربانی به خدا بدن حالا میلیونر باید چیزی بده که براش هزینه برداره این دیگه واسه اش ضرره اون براش خیلی سخت میشه که بخواد علاوه بر یک میلیون دلار یک قربانی فوق العاده هم به خداوند بده ولی این الگوی هدایای عهد قدیم بود مفهوم هدیه در عهد جدید اینه که همه چیز به خدا تعلق داره و شما فقط یک مباشری کسی که چیزهایی رو که خدا به شما میده مدیریت میکنه مسئله که در مباشرت وجود داره اینه که یه روزی امکان داره شما دیگه مباشر نباشی یه روز متوجه میشید که خدا شما را احضار کرده و بهتون میگه حالا حساب مباشرتت رو پس بده ببینید مفهوم مباشرت این نیست که شما ده درصد از سرمایتون رو به خدا بدید مباشرت یعنی تمام چیزها متعلق به خداست و شما مسئولید که تمام اون چیزهایی رو که به شما داده مدیریت کنید وقتی شما حساب مباشرتتون رو به خدا میدین مسئله این نیست که چقدر باید بدین بلکه اینه که چرا بیشترش رو برای خودتون نگه می‌داری؟ چرا بیشترش رو خودتون خرج می‌کنید؟ این مسئله به مدیریت مربوطه. مدیریت شما چگونه است؟ آیا باعث جلال خدا میشه؟ برابری در مباشرت خیلی زیباست. اصلی که در فیلیپیان بوده و میتونه مدل خوبی برای قرنتیان باشه. برابری که خدا میده اینجوریه. اگه بر اساس چیزی که داریم هدیه میدیم، نه بر اساس چیزی که نداریم، خدا روی این برابری بزرگ کار میکنه. خدا هدیه یک بیوه رو که خیلی ناچیز از او میگیره و طوری اون رو برکت میده که از صدها هزار دلاری که یک میلیونر میده بیشتر باعث برکت کار خدا میشه. وقتی که شبان دیک یک کلیسای کوچک رو میساخت روزی مرد جوانی شنبه شب به خونش میاد و یک تفنگ زیبا بهش میده که اون مرد جوان در شکار از اون استفاده میکرد. اون مرد از کاری که انجام داده بود خجالت میکشید. او تفنگ رو انداخت توی بغل شبان و از پله‌ها دوی دو رفت پایین شبان دوشنبه بسله فروشی میره و از فروشنده فکر میکنی چقدر به این اسلحه می او متوجه شد که نباید این هدیه رو قبول کنه چون مرد جوان این اسلحه رو به او نداده بود بلکه به خدا داده بود فروشنده تفنگ نمیتونست این حقیقت رو بپذیره که یک شکارچی تفنگ خودش رو هدیه داده و فکر میکرد که شبان معوذه کرده که اون شکارچی مجبور شده تفنگش رو به او بده تمام چیزی که او میگفت این بود شما چه معهزه ای کردید که این شکارچی تفنگ خودش رو از خودش دور کرده؟ کمی بعد از این ماجرا شبان دیک به یک کلیسای انجیلی دعوت شد که افراد مسن زیادی اونجا بودند. اونا نظر خاصی در مورد این که دلشون میخواد شبان چی بگه نداشتند. وقتی که جلسه رو شروع کردن شبان دیک پرسید دوست دارین که این هفته چه چیز رو باتون در درمیون بذارم؟ بعد از یک وقفه طولانی صدای آشنایی از توی جمعیت گفت به ما بگو چطور اسلحه اون مرد رو از او گرفتی. او نگاهی به جمعیت انداخت و اصله فروش رو شناخت. اصله فروش یکی از مشایخ اون کلیسا بود. اون کلیسای انجیلی در نظر داشت از ای که همه در اطرافش در حال مردن بودند کوچ کنه و بره و در یک جامعه زنده مستقر بشه. اونها در مورد این موضوع به گومگو داشتن و در نتیجه این تفرقه ای که آخر هفته اتفاق افتاد گروه کوچکی که در واقع شاگردان واقعی اون کلیسا بودند تصمیم گرفتند مکانشون را عوض کنن من ایمان دارم که خدا میتونه تفنگ شکاری رو که از یک شکارچی اهل جورجیا به اسم لانیگانتر به عنوان هدیه رسیده چنان برکت بده که برای کمک به ساخت دو تا کلیسا استفاده کنه من ایمان دارم که خدا از چیزهایی مثل اینکه مردم میدن استفاده میکنه و هدیه اونا رو بیش از هدیه یک شخص میلیونر برکت میده و استفاده میکنه. این همون چیزیه که پولوس میگه. هدایا بر اساس چیزهایی که دارید، نه براساس اون چیزی که ندارید. برای همینه که خدا برابری رو در هدایا به ما داده. این همون برابریه که ازش صحبت کردیم. اگه به مساله مباشرت علاقمندید، اگه میخواید موزی در مورد مباشرت تهیه کنید یا میخواید این موضوع رو در جلسات یکشنبه تعلیم بدید، روی باب های و 9 دوم قرنتیان تمرکز کنید. متوجه خواهید شد که این دو باب باب‌های بسیار عالی در موضوع مباشرت در کلام خدا هست. انگیزه نوشتن این دو باب توسط پولوسینه که به مقدسان در جفای اورشلیم کمک بشه. پولس تلاش می‌کنه تا این انگیزه رو به قرنتیان هم بده تا اونها هم به مقدسان در جفای اورشلیم و یهودیه کمک کنند پولس به اونها میگه که از الگوی بسیار خوبی که کلیسای فیلیپیان داره پیروی کنن. او میگه اگه شما قرنتیان میخواین که در کار خدا سحیم باشین این اصول هدیه دادنه که به شما نشون میده چطور هدیهی با ایمان بدید. شما چطور؟ آیا شما این رو متوجه شدید که هرچی دارید مال خداست و او از شما میخواد که بهترین هدیه رو به او بدید؟ آیا شما با خوشی تمام هدیه میدید تا در کار خدا سهیم بشی. آیا شما چیزی رو برای خدا قربانی میکنی؟ اگه شما چیز زیادی ندارید، شاید برای اینه که خدا میدونه توی این زمینه نباید به شما اعتماد کنه. در چیزهایی که دارید، امین باشید تا خدا برکتتون بده. این قولیه که خدا در کلامش به ما داده. این به شما تعلیم میده که چطور در همه چیزهایی که دارید، امین باشید. عزیزان من حرفی که داوود پادشاه در مورد چیزی که به خدا تقدیم می‌کنیم گفت رو خیلی دوست دارم. اون گفت: برای یهوه خدای خود قربانی‌های سوختنی بی‌قیمت نخواهم گذرانید. نظارت یکی از نظم روحانیه. چیزی که از خدا دریافت کردیم، هدیه خدا به ماست. اما چیزی که ما با اون هدیه انجام میدیم هدیه ما به خداست. خداوند میگه: اگه ما در نظارت خودمون با ایمان باشیم اون با ثروت‌های واقعی، ثروت‌های روحانی اعتماد ما رو جلب می‌کنه. دایمان اینه که این درس‌ها باعث کمک شما بشه تا بتونید در ایمان خودتون رشد کنید و کلام خدا رو درک کنید. طوری برنامه‌ریزی کنید که تا بتونید در برنامه آینده هم با ما باشید و با هم به ادامه مطالعه رسالات پولس و نامی اون به غلاطیان بپردازیم. میخوام که روح خدا با شما و بر شما باشه و باعث بشه به اون اعتماد کنید تا همه نظارت با ایمان رو یاد بگیرن و داشته باشن از خدا میخوام که همیشه عمل کردی بسیار خوب و قوی رو به شما بده